با مهرامی سرین درود ها خدمت شما عزیزان همراه و همسفر با یکی دیگر از داستان های جادوگری در خدمت شما عزیزان و خوبان خواهم بود و امیدوارم که تا پایان این داستان هم چون همیشه همراه و همسفر من باشید این داستان جادوگر و کودکان به نام خدا در زمانهای قدیم شکن فقیری بود که یه دختر و پسر دوگلو داشته وقتی که مادر بچه ها مرد هیزمشکن با زن دیگه ی کرد به این امید که همسر جدیدش هم به کارهای خونه رسیدگی کنه و هم مواظب کودکان اون باشه اما خیلی زود فهمید که همسر دوم نه تنها از کار کردن در خونه بیزاره بلکه دوگلوها رو به سختی آزار میده اون تا که میتونست اونها رو به خونه مادر میفرستاد اما با وجود علاقه ای که مادربزرگ بزرگ بچه ها داشت اونها رو زیاد نزد خودش نگه نمی داشت. چون فکر میکرد که خونه پدری برای اونها مناسبتره. تره به زودی زن هیزمشکن از نگهداری و موازبت دو خسته شد و یه روز صبح اونها رو صدا کرد و در حالی که سعی میکرد خودش رو خیلی مهربون نشون بده به اونا گفت من هم مادر بزرگی دارم. اگر شما به دیدن مادر بزرگی من برید اون خیلی خوشحال میشه. مادر بزرگ من یک خونه یه زیبای کچیک میبینه جنگل داره. اون خیلی خوشحال میشه. اگر شما رو در اونجا ببینه و اگر به صحبتهای اون گوش کنید و به کارهایی که میگه درست عمل کنید از شما خیلی هم خوب مراقبت میکنه. بچه ها که جرئت نمی‌کردن چیزی از نامادری بپرسن، فقطون ساکت نشسته بودن و به نامادری که لباس های اونها رو با عجله داخل چمدین کوچیکی می‌گذاشت نگاه می‌کردن. پس نامادری کربه مادر که به اونها نشون داد. اونا های اونها رو بوسید و برای اونها ده سکون داد. اونها خیلی زود از اونجا دور شدن. به سر که نامش مارتین بود رو به خواهرش کرد و گفت: "بی اول به خونه مادر خودمون بریم و همه چیز رو به اون بگیم من مطمئنم که اون به ما کمک خواهد کرد دخترک قبول کرد و بچه ها به جای رفتن به جنگل به طرف خونه مادربزرگ وزرگ افتادن وقتی به اونجا رسیدن مادربزرگ مشغول پختن نون بود اون با محبت اونها رو بوسید و به اونها غذا داد بعد پرسید چی شده که اینطوری بیخبر دیدن دید من اومدین؟ مارتین جواب داد ما داریم به دیدن مادر بزرگ زنبابا میریم. وقتی پیرزن این حرف شنید متوجه نقشه نامادری شد و رنگ از روش فرید. اون وقت با حالتی عصبی فریاد زد. بچه های بیچاره و بیگناه من. نامادری شما شما رو به دیدن مادر نفرستاده اون میخواد شما رو به دام جادوگر پیری بندازه که در قسمت تاریک جنگل زندگی میکنه. مارتین پرسید پس حالا باید چیکار کنیم؟ ما که دیگه جرعت نداریم به خونه برگردیم. مادر بزرگ گفت اگه شما رو پیش خودم نگه دارم نامادریتون با خبر میشه و به سراغتون میاد. بنابراین بهتره شما رو به جایی که نامادریتون گفته برید و اما قبل از اینکه برید هرچی میگم رو مو به مو انجام بدید. شما باید با جادوگر پیر مهربون باشید و کاری نکنید که از دست شما عصبی بشه. از همه مهمتر با جونورایی که در خونه اون هستن تا میتونید مهربون باشید فهمیدید چی میگن؟ بچه های بیچاره یک صدا گفتن بله فهمیدیم پیرزن ادامه داد باید غذاهایی رو که اون به شما میده نخورید من خودم به اندازه کافی برای شما غذا میگذارم مادر بزرگ به طرف آشپزخانه رفت و یک قطعه نان و یک شیشه شیر و یک تکه گوشت او و بین اونها تقسیم کرد. بچه ها غذا رو گرفتند و به طرف جنگل به برافت دادن وسط جنگل بسیار محالود بود و درختها به قدری به هم نزدیک شده بودند که اگر مارتین دود خاکستری رو که از دودکش های خونه میپیچید بیرون رو میخزید رو نمیدید هرگز نمیفهمید که درست به پشت خونه جادوگر رسیدن کمی جلوتر رفتند و دخترک آهسته گفت برای من خیلی جالبه که بدونم جادوگر چه شکلیه فکر میکنی چشماش قرمز باشه مارتین سری تکون داد و چیزی نگفت جادوگر جادوگر پیر صورتی زشت و ترسناک داشت پشتش خمیده بود و موهای بلند و پریشونی روی شونههای لاغرش ریخته بود چشماش سرخ مانند دوتا گوله آتیش در رو باز کرد به نظر رسید میخواد اونها رو با چشمش بسوزونه مارتین معدبانه گفت روز به خیر نامادری ما رو فرستاده تا مدتی نزد شما بمونیم خواهرش در حالی که سعی میکرد ترس خودش رو پنهان کنه گفت بله اون اون گفت که اگر به حرفای شما گوش کنیم از ما با مهربونی نگهداری میکنید خب حالا دشینید و به حرفای من گوش کنید بعد محکم بچه ها رو به طرف زمین هل داد به طوری که مارتین میخواست از اصوانیت چیزی به اون بگه اما یک دفعه به یاد حرف مادربزرگش افتاد و ساکت شد. جادوگر پیر گفت شما تا زمانی که اینجا هستید باید در من کار کنید. بعد اخم کرد و بعد ادامه داد در حقیقت شما از همین حالا باید شروع کنید. وقتی که پیرزن اتاق رو ترک کرد مارتین آهسته گفت حالا بعد چیکار کنیم؟ خواهرش آهسته گفت باید سعی کنیم حرفهای مادر بزرگ رو به خاطر داشته باشیم تا شاید بتونیم راه فراری از اینجا پیدا کنیم. دو قلوها تا اومدن جادوگر بدون هیچ حرکتی روی کف سرد اتاق نشسته بودند. پس از مدتی جادوگر اومد و در یک دستش علک و در دست دیگرش یک گونی پر از پشم بود. پیرزن علک رو به مارتین داد و گفت برو با این علک از چاه آب بیار. بعد گونی پر از پشم رو به دخترک داد و گفت تو هم پشت اون چرخ ریسندگی بشین و این پرشمها رو بریس. مارتین در حالی که به فکر فرو رفته بود الک رو برداشت و بیرون رفت آخذ چطور میتونست توی الک که پر از سوراخه آب پر کنه هم در حالی که به فکر فرو رفته بود پشت چرخ ریسندگی نشست من چطور میتونم این همه پشم رو بریسم در حالی که اصلا بلد نیستم بعد به یاد جادوگر پیر افتاد با خودش گفت قطعه به من نتونستم کار رو انجام بدم خیلی عصبی میشه و از چشماش سرازیر شد و به همینطور که آهسته گریم بکند نایهان از پشت نیمکت چوبی بزرگی که در کلبه بود یه دست موش بیرون پریدن اونها به طرف دخترک رفتن. چاقترین اونها گفت: دکترک چلو، دکترک چلو سر گریه میکنی. رو به ما بگو. دخترک دست از گریه کشید و دیدن اون همه موش براش اونقدر جالب بود که مشکلشو فراموش کرد. کمی گرزش به خودش اومد. گفت: من نمیتونم نخ بریسم. اگه پیرزن برگرده و ببینی که من کاری انجام ندادم، حتما خیلی عصبی میشه. حالا من نمیدونم بعد چیکار کنم کنم موششا گفت اگه تو یک کمی نون به ما بدی ما تمام پشمه رو برد دختر در حالی که از خوشحالی فریاد میزد گفت اگه شما پشمه ها رو برسید تمام نونی که مادر هم به من داده به شما میدم بعد برای یافتن برادرش و حیات رفت اما هرچی گشت نتونست اون رو پیدا کنه با خودش فکر کرد شاید اون به طرف چاه آب رفته باشه وقتی به چاه آب برادرش رو دید که با ناامیدی روی دیوار کوتاه چاه نشسته بود و به برادرش گفت این کار ممکنه هروقت علک رو از داخل آب بیرون میکنیم آب از سوراغهای اون میریزه رو من نمیتونم اون رو پر کنم در همین لحظه یک دسته پرنده کوچیک از راه رسیدند و در کنار اونها روی زمین نشستند یکی از پرنده چیکچیک کنن گفت نراح باش. اگه کسی به ما نون بده ما به تو خواهیم گفت که چطوری علک و پر آب کنی. پسرک فوری نونی رو که مادر بزرگش داده بود تیکه تیکه کرد و خورده های نون رو به زمین پاشید. پرنده های کچلو شروع به خوردن کردن. و کانون گفتند به اون گل که در اونجاست نگاه کن تو باید های علک رو با اون گل مخصوص بگیری. اونب میتونی با علک آب برداری. وقتی مارتین اونچه که پرنده ها گفته بودن انجام داد با کمال تجب دید که علک پر از آب شد اومق با خوشحالی در حالی که ظرف آبرو به دست داشت به همراه خواهرش به طرف کلبه رفت. وقتی وارد کلبه شدن گربه پیرزن رو دیدن که در گوشه لم داده بود و چرت میزد. دخترک با خوشحالی فریاد زد گربه زیبا ببین ببین برای چی آوردم. تپس تیکه گوشتی رو که مادر بزرگش بهش داده بود بیرون آورد و اون رو به گربه داد گربه با خوشحالی خرخری کرد و گفت حالا که تو به من خوبی کردی منم این دستمان رو شونه رو به تو میدم اینا خیلی به درد تو میخورن و بعد ادامه داد من راه رو به شما نشون میدم اما باید بدونید که جادوگر دست دستر شما بر نمیداره و وقتی بفهمه که فرار کردین به دنبالتون میاد اون وقت تو باید این دستمان رو به زمین مندازی دخترک گفت حتما این کاری رو میکنم که تو گفتی ولی این کارا ای داره گربه گفت وقتی دستمان رو به زمین مندازی یه دریاچه بزرگ درست میشه اگه جادوگر از آب گذشت و باز شما رو تقییب کرد باید شونه رو به زمین بندازی تا به بوته های خار تبدیل بشه اون وقت تا جادوگر بخواد از خارها بگذره شما میتونید خودتون رو از اونجا دور کنید در همین موقع جادوگر وارد شد اون فکر میکرد دو قلوها نتونستن کاری که گفته انجام بدن اما وقتی دید تمام پشمار ریسیده شده و علک از آب پر شده عصبی شد و اخماش رفت و هم اون گفت حالا که تمام را انجام دادید میتونید چند تا تکه نون خشک که روی میز هست بخورید اما بچه ها فرن گفتن که قبلا کمی شیر خوردند و اصلا گرسنه نیستند ولی واقعا گرسنه بودند وقتی که جادگر این حرف شنید با خشم به اونها نگاه کرد و چیزی نگفت برای اولین بار بچه ها غذاهاشون رو خورده بودند اون وقت کمی کاه روی زمین دیخت و گفت میتونید اینجا بخوابید اون پیش خودش میگفت صبه خیلی زود وقتی میخوام از خونه بیرون برم کار زیادی دارم که باید انجام بدم دو قلوها که روی کاه دراز کشیده بودند رو بستند و دختر گفت من دیگه نمیترسم حالا ما یه دستمال داریم و یه شونه پسر گفت گردن که دوست ماست دختر گفت تازه اگه قرار باشه دوباره نخریسی کنم موشا به کمکی من میان پسر گفت اگه قرار باشه من هم آب با علک بیارم حتما پرنده ها به من کمک میکنند. اون وقت دست ها رو زیر سر گذاشتند و خیلی زود به خواب رفتند جادوگر پیر سفیددم به نزد اونها آمد و با خشونت به دختر گفت تا من برمیگردم باید این پشمه ها رو بریسی و به پسر هم گفت تو هم باید برام هیزم خورد کنیم اما بلافاصله پس از رفتن اون دوگلوها از دوستانشون خدافزی کردند و اونها با سرعت از جنگل تاریک میگذاشتن. اونقدر دویدن که به اولین جاده رسیدن. در تمام مدت گربه مهربان پشت چرخ ریسندگی نشسته بود و کار میکرد. طولی نکشید که جادوگر پیر لنگون لنگون از راه رسید و به نزدیک پنجره رفت و خواست از اونجا داخل اتاق ببینه اما پنجره خیلی بلند بود و نتونست اون وقت فریاد زده گفت آهای دختر کار چطور پیش میره؟ گربه جواب داد خیلی خوب پیش میره متشکرم جادوگر پیر رضایت دور شد اما در بین راه به شک افتاد و برگشت دوباره فریاد زد پشما رو ریسیدی؟ و گربه جواب داد وله مادر بزرگ عزیزم ریسیدم و تمام شد جادوگر میدونست که کار ریسندگی به این رودی تموم نمیشه به همین دلیل با فریاد وارد خونه شد حالا تصور کنید چهره اون رو وقتی که دید گربه پشت چرخ ریسندگی نشسته و از دختر خبری نیست در حالی که از شدت اصابونیت میلرزید فریاد زد تو اجازه دادی که اونها برند؟ اونها مال من بودن، مال من و تو گذاشتی که اونها برن، چرا؟ چرا اجازه دادی که فرار کنن؟ با دسته جارو گربه رو زد اما گربه پشت خودش رو خم کرد و به اون براق شد و گفت بله من اجازه دادم که برن چالهاست به تو خدمت میکنیم اما تو هرگز یک کل ماهی هم به من ندادی اما این بچه ها سهم گوشت خودشون رو به من دادن بله جادوگر فهمید که گربه کمکی به اون نخواهد کرد بنابراین به طرف حیات دوید و پرنده ها رو صدا کرد بچه کجا هستند از کدوم طرف رفتن؟ اما پرنده ها جواب دادن سالهاست که ما با صدامون شادی رو به کلبه تو میاریم اما تو حتی یک قطعه نون کوچیکم به ما ندادی ولی این بچه ها از نوان خودشون گذشتن و اون رو به ما دادن نه نه ما هرگز به تو نمیگیم که اونها از کدوم طرف رفتن جادوگر فریاد زد من اونها رو به چنگ میارم. به کمک شما اتیاطی ندارم اون وقت سوار جاروی جادویی خودش شد و به دنبال اونا رفت بچه ها هنوز می دویدن. اونها حتی یک لحظه هم نایستاده بودند، به طوری که نزدیک بود نفسشون دیگه بند بیاد اما به زودی جادوگر پشت سر اونها رسید بچه ها متوجه شدند که هر چقدر که تون بدوند فایده نداره اونها قادر نبودن از جادوگر و جاروی اون جله بزنند. مارتین در حالی که بازوی رو گرفته بود و او رو نگه داشت. گفت گوش کن گوش کن خواهر گوش کن آیا صدایی نمیشنوی خواهرش جواب داد چرا میشنوم؟ چرا میشنوم؟ و پشت سرشون نگاه کرد و به برادرش گفت این صدای جادوگر پیره که با جارو جادوییش به طرف ما میاد حالا بعد چیکار کنیم نخترک گفت نترس الان دستمال رو به زمین میندازم به همین که دستمال به زمین افتاد به دریاچه عمیقی تبدیل شد و همه رو آب گرفت مارتین با خوشحالی گفت این جلوی جادوگر پیرو میگیره دسته جارو نمیتونه اون رو از آب رد کنه جادوگر مجبور شد که در دور بزنه اگرچه این کار کمی وقتش رو گرفت اما به زودی به بچه ها رسید مارتین به خوارش کفت اگه بتونیم از چمن بگذریم به خونه رسیدیم دختر با حیزان جواب داد اما من صدای جادوگر رو میشنوم باید سرک کنیم کمی تونتر بدوییم و یعنی ما رو میگیره. مارتین فریاد زد. شونه رو فراموش کردی زود باش. زود باش شونه رو بنداز به زمین. همین که شونه به زمین افتاد. یک بوتزار پر از خار همه جا رو فرا گرفت. و وقتی جادوگر به بوتزار رسید خیلی حسبی شد. چون تبه ها برای جا روی اون خیلی بلند بودند. و بیش از اندازه انبوه بودند و اون نمیتونست از اونها عبور کنه البته جادوگر خیلی سعی کرد به طوری که خارهای تیز صورتش رو خراشید و لباسش رو پاره کرد و سرانجام در حالی که از خش فریاد میکشید خارها رو از پشت خودش جدا میکرد و به طرف کلبه است را را خود میرفت دو قلوها دویدند و دویدند تا به کلبه خودشون رسیدند پدر اونها جلوی در خونه ایستاده بود و بچه‌ها به طرفش دویدند و پدر اونها رو در آغوش گرفت. دوغلوها گفتند: اون مادر بزرگ نامادریمون نبود، اون یک جادوگر پیر و ترسناک بود. پدر وقتی که شنید همساره شکار کرده، خیلی عصبی شد و اون رو از خونه بیرون کرد و گفت که دیگه حق نداره به اون خونه برگرده. از اون روز به بعد خودش کارهای خونه رو انجام میداد و دوغلوها هم به اون کمک می‌کردند. و شما مطمئن باشید که به خوبی و خوشی زندگی کردن بله دوستان من این هم یکی دیگر از داستانهای افثانه جادوگری که تقدیم حضور شما عزیزان شد متشکرم که در طول این قصه هم با من همراه و همسفر بودید برای شما دلیشات، لبیخندون، روزگاری بی آرزو می کنم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 قصرهای باشکوه و, و مهمانیهای بزرگ شاهانه اذهایی از سفرهای دور و دراز با پای پیاده سفر ها و شاهان با اصفهای تندرو و جادویی به های ناشناخته